در سال 1923 سومین و آخرین دعوای قانونی بین پدر و مادران بر سر پول درگرفت. گرفت. زخیره من و سیدنی در دست بانک سیتیزن نشنال بود که آن را به صورت سهام درآورده بود. مادر ما که قیم قانونی ما بود بر درآمد ماهانه ما کنترل کامل داشت و فقط موظف بود اقلام مخارج ماهانه را به طلاع پدرم برساند من میتوانم تصور کنم که مادرم در نگه داشتن این حسابها چه دل داشته است زیرا او مانند من با حساب و کتاب میانه ای ندارد بعد از درگیری او با پدرم بر سر قرارداد شرکت ما در فیلم ناگهان به خاطرش رسید که ممکن است روزی پدرم او را بر سر مخارج ما پای حساب بکشد از این رو حسابداری به نام خانوم جولیا بریک را استخدام کرد که حساب و کتاب ما را برسد من خانوم بریک را در دفترش هنوز به یاد دارم آنجا پشت میزش می نشست روی کلیتهای ماشین تحریر بازی می و در آخر ماه او صفحات حاوی اقلام مخارج ما را ماشین می این لیست شامل اقلام زیر هم بود مخارج سلمانی سیدنی دو نیم دلار مخارج درآوردن زگیل از دست من پنج دلار. پدرم که ماها به دقت این لیست را مطالعه می کرد از مقدار مخارج ما به وحشت افتاد. نگرانی او از این لحاظ بود که پول را مهمترین وسیله تأمین و تضمین زندگی هر فرد میدانست و عقیده داشت که هرچه بیشتر ممکن است باید برای آینده ما پسنداز شود. امروز مادرم میگوید دلش میخواست پدرم به طور خصوصی نزد او میرفت و پیشنهاد میکرد که مثلا ربع درآمد ماهانه ما در حساب پس انداز غیر قابل برداشت گذاشته شود تا در 21 سالگی در اختیار ما قرار گیرد. او نشانه عقل و دوراندیشی را در این پیشنهاد میدید و با آن موافقت میکرد. و دیگر لزومی به طرح دعوا در محکمه و ایجاد سر و صدا نبود. اما پدرم که میانش با نانا خوب شده بود و ما را مرتب می‌دید، هنوز نسبت به مادرم احساس بیگانگی می‌کرد. زیرا ظاهرا هرگز به فکر این هم نیفتاد که مستقیماً با او صحبت کند. در عوض، او وکیلش را خواست و فیسله‌ی کار را به او باگذاشت. باز ماجرا شروع شد. باز روزنامه‌ها به سر و صدا در اطراف ما پرداختند. پدرم در هیچ از جلسات دادگاه حاضر نشد. مادرم یک بار برای شهادت حاضر و به شدت عصبانی شد. در کرسی شهود دادگاه گفت که پدرم دائما او را تغییب می کند و زجر می دهد. من گمان می کنم که حتی در آن موقع فشار روحی خطرناکی در نهانگاه روح او انباشته می شد. زیرا اعتقاد او مبری بر اینکه پدرم بدخواه اوست، هنگامی که سالها بود گرفتار ناراحتی عصبی شد. هزار بار راسخ تر گشت. دعوای دادگاهی با تصمیم قاضی بیسر صدا پایان گرفت. قاضی به نفع پیشنهاد پدرم رای داد و در این حال یک پیروزی اخلاقی و روحی برای مادرم بود. زیرا او را از زیر بار فرستادن آن گزارش‌های ماهانهی قضایی خلاص کرد. وقتی من و سیدنی 21 ساله شدیم هر دو از عقل و دوراندیشی پدرمان ممنون بودیم. زیرا هر کدام هفته هزار دلار در بانک پسنداز داشتیم. اما نمیتوانم بگویم در هنگام دعوا از فشار روحی پدر و مادرمان رنج نمی بردیم. یک واقعیت ناراحت کننده دیگر نیز در آن زمان رخ داد. و آن بعد از واقعی بود که نه فقط زندگی ما را مختل کرد، بلکه بر زندگی فرزندان خانواده های سرشناس همه جا اثر گذاشت. روز بعد از آنکه روزنامه ها خبر رو بودن طفل چارلز لیندبرگ را منتشر کردند، کارگران آمدند و همه پنجره های خانه ها را با زنگ خطر زده دزد مجهز نمودند. اما خانواده ما زنگ خطر زده دزد را برای اتاق خواب ما کافی نمیدانست. ما ناچار بودیم تمام شب را در اتاق با پنجره بسته بخوابیم. شبهای گرم ما در اخت خواب خود بلند می شدیم، و رو خود را پس می‌زدیم. ترمان از گرمان سرخ می و عرق می‌ریختیم و در فکر بودیم که این کارها برای چیست. به نظر ما این تدابیر بی معنی بعد یکی از شبها پرده پنجره‌ای بریده شد و صدای زنگ خطر ضد دوست بلند شد. در عرض چند ثانیه همه خانه به هم ریخت. همه چراغ‌ها روشن شد و پلیس را صدا زدند. من و اسیدنی توی ها میدویدیم به پرده‌ی باریده و پلیس‌های بلندقَد آیفارم پوشیده نگاه می‌کردیم. از گفتگوهایی که در جریان بود فهمیدیم که این آدم هر که بود به دنبال ما بود و این ماجرا یک آرتیست بازی واقعی است. به هیجان آمده بودیم و کودکانه از اینکه در مرکز این ماجرا قرار داشتیم افتخار می‌کردیم. بعد از آن وقتی سر و صدا خوابید و افسران تیره لباس رفتند، ما اهمیت قضیه را از ظاهر بزرگترها فهمیدیم و برای اولین بار ترسی مبهم احساس کردیم. از آن پس تا موقعی که در آن خانه بودیم، این ترس همیشه همراه ما بود. اولین هفته بعد از این ماجرا به ما اجازه خروج از خانه را نمیدادند، اما کم کم این ممنوعیت برطرف شد. ولی حق نداشتیم بدون همراهی یک نفر بزرگتر، حتی پایمان را از در خانه بیرون بگذاریم. البته در رفتن به خانه دوستانمان محدود بودیم. اگر می‌خواستند ما را ببینند، بایستی به خانه ما می‌آمدند. نانا ما را به مدرسه خصوصی روزانه میبرد می‌برد و برمی‌گرداند. در مهمانیها، اگر چه در همسایگی ما بود، همیشه ما را همراهی می‌کرد. ما فقط یک نفر دیگر را می شناختیم که مثل ما تحت مراقبت قرار داشت و آن شرلی تمپل بود که همیشه ما را به مهمانی های خود دعوت می کرد. آن موقع شرلی یکی از های برچستگ سینما بود و ما را عقب گذاشته بود. اما شرلی دختر بود و من و سیدنی پسرهای هشت سال و هفت ساله بودیم و احساس می کردیم دیگر نباید مثل بچه های کودکستانی از ما مراقبت کنند. وقتی در پاییز بعد فهمیدیم که ما را به مدرسه شبانه روزی میفرستند، نفس راحتی کشیدیم. فکر فرستادن ما به مدرسه شبان روزی از پدرمان بود. به نظر او دورو بر ما را زن گرفته بود. با خانم برک و پرستار ما جمعا پنج نفر زن دورو بر ما بودند و این اده به نظر پدرمان که تجربه خوبی در معاشرت با جنس مخالف نداشت خیلی زیاد بود. و برای مادرم لیستی از مدارس پرستاد که از آن میان مؤسسه نظامی بلاک فوکس مورد پسند او قرار گرفته بود. این مدرسه در هالیوود بود. پدرم از مادرم خواهش کرد که یکی از این مدارس را برای ما انتخاب کند. مادرم و نانا تصمیم گرفتند ما را به آن مدرسه بگذارند که آخر هفته را بتوانیم در خانه خودمان بگذارانیم و رفت و آمد به آن آسان باشد. ادهی از بچه های شخصیت های برجسته سینمایی به این مدرسه می‌رفتند و مادرمان گمان می‌کرد که تربیت نظامی برای ما خوب خواهد بود. اما نانا با این نظر موافقت نداشت. مادرم نظر خود را به پدرم اطلاع داد و او هم از این انتخاب مدرسه اظهار خورسندینه بود. من گمان نمی‌کنم که پدرم چه در آن زمان و چه بعدن هرگز به این فکر افتاده باشد که فرستادن فرزندانش به مدرسه نظامی برای او که همواره مخالف سرسخت جنگ بود کاری عجیب و پرتناغذ است. یک روز صبح از روزهای سرد ماه جانویه ما مدرسه شدیم و از خوشحالی داشتن دور نمایی در پیش روی خود در پوست خود نمی‌گنجیدیم. اما همین که همراه سیدنی و نانا پایم را از مدرسه تو گذاشتم حس کردم که یک جای کار خراب است. این احساس با هر قدم که به جلو بر می داشتیم بیشتر می شد. وقتی ما با نانا که ما را با اتومبیل به مدرسه آورده بود خداحافظی کردیم و بعد حتی از سیدنی هم جدا کردند، این احساس به اوج خود رسید. من و سیدنی همه عمرمان را با هم گذرانده بودیم. در یک اتاق به سر برده بودیم و حالا برای اولین بار ناچار بودیم از هم جدا باشیم. در عوض من، با دوتا تا غریبه هم همخانه بودم. اتاقمان کوچک و ساده بود. تخت خواب هامان باریک ولی راحت بود. من و دو نفر همخانه هم از یک حمام که در کنار اتاق هامان بود استفاده می کردیم. همه چیز خالی و برهنه به نظر می من ناگهان زیر گریه زدم. پرستار مدرسه که مرا به اتاقم آورده بود گمانم با این مناظر آشنا بود. کوشید مرا آرام کند و به من گفت همه چیز درست می شود به این وضع عادت می یا و از آن خوشت میآید. سه هفته که قرار بود به این وضع عادت کنیم گذشت در خلال این مدت همه جا توی اتاق و بیرون پنهان از چشم دیگران گریه می کردیم یک بار هم من و سیدنی در خواب راه رفتیم پرستار به نانا گفت همه تازه واردها همین جوری می شوند. به نظر من بدترین چیز این مدرسه نظم و ترتیبان بود. تمام کارها از بام تا شام قبلا به دقت تنظیم و معین شده بود. مثل اینکه آدم پیاده شطرنج است. اگر مقررات مدرسه را زیر پا می‌گذاشتیم تنبیه می‌شدیم. مجازات حرف زدن سر کلاس، چوب زدن به کف دست‌هامان بود. اگر سر صف حرف می زدیم، ما را به اتاق معلم ورزش می و او کتکمان من می زد. من البته در خانه از دست نانا با لنگ کفش کتک خورده بودم اما آن با این خیلی فرق داشت وقتی نانا می زد دلخوری و رنجش من بیشتر از این جهت بود که نانا را دوست داشتم و نمی خواستم از دست من نراحت شده باشد اما کتک خوردن در مدرسه هم باعث نارضایتی و هم باعث تحقیر من میشد. از این جهت احساس تحقیر میکردم کردم که آنقدر کوچک بودم که نمی توانستم با معلم ورزش دعوا کنم و کتک او را حتی حرفهای او را جواب بدهم. اگر خلاف واقعا مهم و جدی بود چیزی بدتر از چوب و کتک خوردن در انتظار من بود. ما را به اتاق رئیس مدرسه می بردند و امکان داشت که او برای پدرمان نامه بنویسد و از ما شکایت کند. اولین روزهایی را رو که در مدرسه گذراندم خیلی به من سخت گذشت. به نظرم می‌آمد یک اده آدم گنده مثل قول آمادند به محض سرزدن کوچکترین خلافی به سرم بریزند و پاره پارهم کند. به یاد عشق و علاقه زنامه و ادالتی که در خانه از آن برخوردار بودم گریه می کردم. اگرچه اتاقام از سیدنی جدا بود، اغلب او را می دیدم و از حرفایش می فهمیدم که او هم مثل من از همه چیز این مدرسه متنفر است. معلوم است که روزهای جمعه نه فقط برای من و سیدنی بلکه برای همه بچه های مدرسه چه ذوق و شوقی به همراه داشت. جمعه ها تعتید بود. و در این روز ما جلوی اده ای از افراد خانواده و بستگان و دوستان رژه می رفتیم و چیزهایی را که در عرض تمرین های روزانه نمخته بودیم به نمایش می گذاشتیم. نانا همه جمعه ها برای تماشه رژه رشه می آمد. مادرم گاه گاه می آمد و پدرم یکی دو بار سری به مدرسه زد. پدرم در این موقع مثل همه مواقعی که با غریبه هاست خودش را می گرفت. او هرگز دانند پدران و مادران دیگر با معلمین ملاقات نمی کرد. با افراد خانواده های دیگر حتی با نانا گرم نمی گرفت. آیا این برای آن نبود که دیدن مدرسی منظم با ساختمان قشنگ و زمین ورزش های وسیع او را به یاد دارالایتام کسیفی می انداخت که دو سال از عمر دوران کودکیش را در آن گذرانده بود. شاید همین خاطره زبان او را می و به او آن ادب و سر زیری را که مخصوص کودکان فقیر است میبخشید. ولی یک روز پدرم از میان تماشاچیان گذشت و خودش را به نانا رسانید و ناگهان با حیجانی که نانا از علت آن سردر نمی آورد گفت میدانی، ما هرچه بزرگتر می شویم نرمتر و ملایمتر می شویم. گذشت زمان خودش کارها را اصلاح می کند. من مطمئنم که از این به بعد روابط ما به کلی اصلاح خواهد شد. و همینطور هم شد. این سخنان ختم همه ی دعواها و مناقشات پدر و مادرم بود. دیگر از دواوی دادگاهی و کشمکش بر سر آینده و سعادت خبری نبود. آن چند بار را که پدرم به مدرسه آمد خوب بیاد دارم. او را که به سادگی ایستاده بود دستش را به پشت کمرش زده بود و چشمانش از خوشحالی میدرخشید و لبانش به شادی از هم باز می‌شد به خاطر می آوردم. شاید او از این توانسته است برای فرزندانش زندگی چنین منظم و ایمنی فراهم آورد احساس حیرت و غرور کرد. اما چهره او چیزی بیش از این را نشان میداد که احساس خانه و خانواده را در من بیدار میکرد و من از میل به مهربانی سرشار می نمود. شاید این به خاطر آن بود که من تنهای عمیق او را احساس می و می که در این موقع هنگامی که آن چشمهای آبی را به سوی خود خیره میدیدم دیدم قدم بر می داشتم. و چالاکتر می شدم. بهتر سلام نظامی می دادم و پاشنهای پایم را محکم تر می کوبیدم. آن بعد از روزهای روز جمعه برای ما بچه های بلاک از هر روز دیگر هفته با عرزشتر بود. زیرا اگر قسمت ما خوب کار کرده بود به ما اجازه می‌دادند که تعطیلات آخر هفته را به خانه برویم. معمولا من و سیدنی یک هفته را با مامان و نانا و هفته بعد را با پدرم می گذارندیم. برای اینکه ما حالا دیگر در مدرسه نظام بودیم و پدرم آنقدر ما را بزرگ میشه مارد که تمام تعطیلات آخر رفته را با او باشیم. آه که چه تعطیلات جالبی بود؟ آن خانه سهرآمیز فراس تپه با مردی که در آن میزیست پدر ما بود و شخصیت چنین متنوع همه جانب داشت. همه این جمعه های شخصیت او را ما درک میکردیم مردی اهل انزباط خشک سرگرم کنندهی یک فردی خیال پرست و سرسخت و افسرده، انسانی بدوی با خلق و خویی چون آتش فشان. این شخصیت متنوع و متغیر بر تمام دوران کودکی من سایف افکنده بود و همیشه مرا مجذوب خود می